آتش نورا نفس و عمیقی کشید. بسیار ناگهانی همه چیز را حس کرد. سر و صدا و آب. دهانش باز بود و داشت خفه میشد. سوزش و تیزی آب شور. سعی کرد پایش کف صخر را لمس کند، اما متوجه شد زیر پایش خالی است. برای همین سریع به حالت شنای قورباغه درآمد. توی استخر بود، اما استخر آب شور. در فضای آزاد و کنار اقیانوس بود ظاهرا استخر را در صخره بیرون زده از خط ساحل تراشیده بودند می توانست ساحل را آن سوی استخر ببیند خورشید بالای سرش میتابید آب استخر خنک بود اما با توجه به حرارت هوای بالای سرش خنکی آب لذت بخش بود روزی روزگاری بهترین دختر شناگر چهارده ساله در بدفردشایر بود در مسابقات ملی شنای نوجوانان در سن خودش دو مسابقه را برنده شده بود. شنای آزاد 400 متر و شنای آزاد 200 متر. پدرش هر روز با ماشین او را به استخر محلهشان می رساند. بعضی وقتها هم قبل مدرسه و هم بعد مدرسه. اما بعد زمانی که برادرش با گیتار آهنگ های را می زد نورا هم طول استخ را با گام موسیقی عوض کرد و خودش یاد گرفت چطور بنوازد. آن هم نه فقط قطعه های شپن بلکه قطعات کلاسیکی مثل رهایشگون و روزهای بارانی و دوشنبه ها. همچنین شروع کرد به ساختن قطعات خودش. آن هم پیش از آن که راه انداختن هزار تو به ذهن برادرش خطور کند. اما هدف اصلی نورا دوری از فشار ایجاد شده به خاطر شنا کردنش بود، نه خود شنا کردن. به کناری ایستخ رسید. ایستاد و اطراف را نگاه کرد. در فاصله دور می توانست ساحلی را پایین تر از سطح استخ ببیند که شبیه نیم دایره رو به دریا قوس برداشته بود و به استقبال امواج آب دریا روی ماسه هایش می رفت. آن سوی ساحل و در دل خشکی، زمینی پوشیده از چمن قرار داشت. پارکی درست و حسابی با درخت های نخل و مردمی که برای گرداندن سک آمده بودند. پشت پارک خانه ها و مجتمه های آپارتمانی کوتاه و چند طبقه بودند و ماشین هایی که در یک خیابان حرکت می کردند. نورا قبلا اکس های خلیج بایرون را دیده بود. به نظرش اصلا این شکلی نبود. در اینجا هر جا که بود ساخت و ساز بیشتری شده بود. هنوز هم مناسب سواری بود، اما البته شهری تر. دوباره توجهش را معطوف استخر کرد و این بار مردی را دید که حین تنظیم اینک شنایش لبخندی به زد. نورا این مرد را می شناخت. در این زندگی این لبخند برایش خوشایند است. از آنجا که هیچ اطلاعی نداشت، در جواب لبخندی کوچک و معدبانه زد. حس گردشگری را داشت که عرض ناآشنای محل مسافرت را در دست دارد و نمی داند باید چقدر انعام بدهد. سپس زنی موسیم را دید که کلاه شناب سر داشت و در حالی که توی آب به سمت او می لبخند میزد می زد. پیر زن بیان که توقف کند گفت صبح خیر نورا. این صبح خیر نشان می داد نورا خیلی به این اسلخ می آید. نورا گفت صبح خیر. برای آنکه درگیر مکالمهی معذب کننده نشود، به سمت اقیانوس خیره ماند. گروهی از موج سواران سهرخیز که از آن فاصله شبیه لکه های کوچک به نظر می روی تخته هایشان شنا می و به سمت انواج عظیم و آبی کبود می رفتند. آغاز امیدوار ای برای زندگیش در استرالیا بود. به ساعتش نگاه کرد. کاسیویی به رنگ نارنجی روشن با ظاهری ارزان قیمت بود. نورا امیدوار بود شاید سرخوشی که از این ساعت حس می کرد نمایانگر شادی زندگیش باشد. اینجا تازه ساعت از نه گذشته بود. جز ساعتش یک دستپند پلاستیکی هم به دست داشت که کلیدی از آن آویزان بود. پس این کار هر روز صبحش در این زندگی است. در استخری روباز کنار ساحل شنا می کند. به این فکر افتاد که آیا تنها به اینجا آمده یا نه؟ همه جای استخر را امیدوارانه به دنبال ایزی گشت اما پیدایش نکرده. کمی دیگر شنا کرد. چیزی که زمانی او را به شنا جزب می میکرد حس ناپدید شدنش بود. وقتی وارد آب میشد آنقدر تمرکز میکرد که هیچ فکر دیگری به ذهنش نمیرسید. تمام نگرانی هایش را درباره مدرسه و خانه فراموش میکرد. در نظر شنا هم مثل هر هنر دیگری در خلوص توجه و دقت خلاصه میشد. هر چقدر بیشتر روی کارش تمرکز میکرد، تمرکزش روی چیزهای دیگر کمتر میشد. در واقع انگار دیگر خودش نبود و به آنچه انجامش میداد بدل میشد. اما وقتی بازوها و سینهش درد گرفتند، تمرکز کردن برایش سخت شد. فهمید که مدت زیادی را شرا کرده و احتمالاً وقتش هست که از استخر بیرون برود. تابلویی دید. استخر شنای ساحل برونته. تا حدودی یادش میآمد که دن چیزی درباره این شهر گفته بود، چون بعد از فارق و تحصیلی یک سال را در استرالیا گذرانده بود. اسم اینجا ساحل برونته در یاد نورا مانده بود، چون به خاطر سپردنش راحت بود. جینیر، سوار بر تخته موج سواری، اما اینطوری شکش به یقین تبدیل شد. ساحل برونته در سیدنی بود، اما مشخصاً بخشی از خلیج بایرون نبود، پس این می دو معنا داشته باشد یا ایزی در این زندگی در خلیج بایرون نبود یا نورا با ایزی نبود نورا متوجه شد پایش به رنگ کاراملی یک کمرنگ برنزه شده البته مشکلش این بود که نمیدانست لباس‌هایش لباسهایش کجا هستند اما بعد یاد دستبند پلاستیکی و کلید آویزان از آن افتاد پنجا و هفت کمود شماره پنجا و هفت بود بنابراین رختکن را پیدا و کمد کم ارتفاع و مربعی را باز کرد و متوجه شد در این زندگی سلیغش در لباس هم مثل ساعت رنگارنگ و شاد است. تیشرتی با نقش آناناس داشت. آن هم نه یکی بلکه آناناسهای زیاد با شلورک جین صورتی بنفش و کفش راحتی با طرح چهارخانه سیاه و سفید. با خود فکر کرد. شغلم شیه. نکنه مجری تلویزیونی برنامه کودکم ضد آفتاب روژه لبی به رنگ گل ختمی چینی جز اینها وسایل آرایش دیگری نداشت در حالی که تیشرتش را می پوشید چند جای زخم روی بازویش دید زخمای خطی لحظه به این فکر کرد که آیا این زخما را خودش ایجاد کرده است یا نه یک خالکوبی هم درست زیر داشت قغنوس و شعله های آتش خالکوبی خیلی بدی بود. آشکارا در این زندگی اصلاً سلیقه نداشت، اما از کیت حالا سلیقه داشتن، ارتباطی با شاد بودن داشته. لباسهایش را پوشید و گوشی از جیبش شلوارکش بیرون آورد. یک مدل قدیمی‌تر از گوشی بود که در زندگی متأهلی میخانهایش داشت. خوشبختانه با اثر انگشتش توانست قفل آن را باز کند. از رختکن بیرون آمد و در مسیر کلار ساحل قدم زد. روزی گرمی بود. شاید وقتی خورشید در ماه آوریل اینقدر با انرژی به زندگی خود به خود بهتر شود. همه چیز شادابتر و رنگارنگتر و در مجموع زنده تر از انگلیس به نظر می رسید. توتی استرالیا کمانی را دید که روی پشتی نیمکتی نشسته بود و چند گردشگر از آن عکس می گرفتند. دوچرخ سواری که به غیافش می آمد موج سوار هم باشد و اسموتی پرتغال داشت. لبخند زنان از کنار نورا گذشت و عملا گفت صبح خیر خیلی خوب اینجا واقعا هیچ شباهتی به بتفورد نداشت نورا متوجه شد که دارد اتفاقی برای صورتش میافتد واقعا ممکن بود داشت لبخند میزد آن هم لبخندی واقعی نه فقط برای اینکه کسی از او انتظار لبخند داشته باشد سپس نقاشی خیابانی کوچکی را روی دیواری کوتاه دید که نوشته بود دنیا آتش گرفته و یکی دیگر که می گفت برای نجات زمین فقط یک راه داریم لبخندش از بین رفت به هر حال داشتن زندگی جدید به آن معنا نبود که در سیارهای جدید باشد اصلا نمیدانست کجا زندگی می کند یا شغلش چیست یا اصلا بعد از استخر باید به کجا برود اما در این حال همین موضوع برایش حس آزادی خاصی داشت، اینکه بدون هیچ انتظار یا توقعی حتی از طرف خودش صرفاً وجود داشته باشد. همانطور که قدم میزد، اسم خودش را در گوگل نوشت و یک سیدنی هم پشتش گذاشت تا ببیند چیزی پیدا می شود یا نه. قبل از اینکه نتایج جستجو را بررسی کند، سرش را بالا آورد و مردی را دید که در مسیر به سمت اومی آید و لبخند می زند. مردی قد کوتاه و برونزه بود با چشمهای مهربان و موی بلند کم پشت که آن را دومعصبی شلوولی بسته بود و پیراهنی که دکمه هایش جا جا بسته شده بود. سلام نورا. نورا در حالی که می کشید را پنهان کند گفت. سلام. امروز که شروع می کنی؟ چطور می توانست جواب این سوال را بدهد؟ او اوه، لعنتی، اصلا یادم رفته بود مرد انگار که حالش را فهمیده باشد خندید انگار که نورا همیشه عادت داشت همه چیز را فراموش کند توی فهرست عصامی دیدمش فکر ساعت یازده باشه یازده صبح مرد چشم مهربان خندید این روزا چی میکشی؟ منم ازش میخوام نورا به خشکی گفت ها هیچی هیچی نمیکشم فقط سبونه نخوردم خب امروز بعد از میبینمت آره همونجا میبینمت کجا بود؟ مرد با اخ بر چهره خندید و مسیرش را ادامه داد نورا شاید توی کشتی تفریحی تماشای نهنگ در سیدنی کار میکرد شاید کار ایزی هم همانجا باشد نورا هیچ اطلاعی نداشت که کجا زندگی میکند یا میکنند در گوگل هم چیزی پیدا نکرد اما مسلما با دور شدن از اقیانوس مسیر را اشتباه نمیرفت. شاید یکی از دو چرخه هایی که جلوی کافی سخت بسته بودند، مال او بود. داخل جیب‌ها و کیف پول کوچک سگکدارش دنبال کلید گشت، اما فقط یک کلید خانه پیدا کرد. نه کلید ماشینی در کار بود و نه کلید دو چرخه‌ای. بنابراین یا با اتوبوس به سخر آمده بود یا پیاده. روی کلید خانه هیچ اطلاعاتی نوشته نشده بود. به همین خاطر روی نیمکتی پشت به آفتاب شدید نشست و پیامهایش را بررسی کرده. اسم چندین نفر در گوشی بود که نمی‌شناختشان. امی، رادری، بلا، لوسیپی، کمالا، لوک، لوسی این آدما کیان؟ یک مخاطب که خیلی ساده اسمش کار ذخیره شده بود و هیچ کمکی به او نمی‌کرد. به تازگی از مخاطب کار فقط یک پیام دریافت کرده بود. کجایی؟ یک اسم هم بود که نورا شناختش. دن. دلش هوری ریخت و روی پیام های اخیرش کلیک کرده. سلام نورا. امیدوارم و ها خوب بهاد رفتار کنن. این حرف ممکنه یا لوس و خونک به نظر برسه یا ترسناک. اما در هر صورت میخوام بهت بگمش. دیشب خواب میخونمونو دیدم. رویا یه خوبی بود. خیلی خوشحال بودیم. بگذاریم. عجیب بودن این حرف رو ول کن. چیزی که می‌خواستم بگم این بود. حدس بزن، ماه می کجا برم؟ استرالیا. تو ده سال اخیر اولین باری که میام اونجا. کارم رو هم میارم. با سازمان حفاظت دریا و ساحل کار میکنم. اگه وقت داشته باشی، خوب میشه که همدیگه رو ببینیم. حتی اگه شده به اندازه خوردن یه قهوه. د آنقدر به نظرش عجیب بود که میخواست بخندد اما برعکس سرفه کرد. حالا که فکرش را میکرد شاید در این زندگی خیلی هم سالم و سرحال نیست. به این فکر کرد که در دنیا چند دن هست که رؤیای چیزی را در سرمی پروورانند و بعد که به دستش بیاورند از آن متنفر میشوند. چندتا از آن دنها سعی میکنند رؤیای شادی نشان را به بقیه هم القا کنند. یا در این زندگی فقط این اینستاگرام دارد و فقط عکس‌هایی با متن شعر میگذارد یکی از شعرها را خواند آتش هر تکه از او که تغییر یافت که تراشیده شد و زمین ریخت چه به خاطر خنده هم مدرسه‌ای ها و چه نصیحت بزرگترها دیگر تمام شد درد دوستانی که دیگر مرده اند او تکه ها را از زمین برداشت مثل خرد های چوب و آنها را سوزاند آتش زد سوزاند، آنقدر درخشان که تا ابد دیده شود رنج به نظر می می‌رسید اما خوب در هر صورت فقط یک شعر بود چند تا از ایمیل ها را نگاه کرد و به ایمیلی رسید که برای شارلوت فرستاده بود شارلوت فلودزن گروه موسیقی کلی و زنی بسیار خودمانی بود که در مدت حضورش در پیتفورد تنها دوست نورا در مغازه تئوری ریسمان محسوب می‌شد اما بعد به زادگاهش در اسکاتلند برگشت سلام شارل امیدوارم همه چیز خوب و خوش باشه خوشحالم که تولدت خوب پیش رفت ببخشید که نتونستم بیام توی سیدنی آفتابی هم اوضاع خوبه بالاخره اسباب‌کشی به خونه جدید تموم شد درست بغل ساحل برونت است. خیلی قشنگه. کلی کافه ها و چیزهای جالب داره. یه شغل جدید هم پیدا کردم. هر روز صبح توی یه سخر آب شور میرم شنا. عصرها هم زیر نور خورشید میشینم و یه ریوان نوشیدنی استرالیایی میخورم. زندگی خوبه. آدرس پلاک 29 ممیز دو خیابان دارلینگ برونت نیو ساوت ویلز بیست, بیست استرالیا نورا بوس مشکلی وجود داشت لحن نام نشانگر شادی و سرحالی دوردست و محف شده ای بود گویی برای خاله نامه نوشته که مدت هاست او را ندیده کلی کافه های محلی و چیزهای جالب داره انگار توی سایت تریپ ادوایزر برای گردشگران از برونته تعریف می کرد نورا با شارلوت یا هیچ کس دیگری اینطوری حرف نمی زد. همچنین هیچ اسمی از ایزی نیاورده بود آخر اسباب کشی به خونه جدید تموم شد اما خودش تنها در آن خانه زندگی میکرد یا با ایزی؟ شارلوت که ایزی را می شنخت. چرا نورا اسمش را نیاورده بود؟ به زودی میفهمید واقعا هم همینطور شد چون 20 دقیقه بعد در راه روی آپارتمانش ایستاده بود و خیره به چهار کیسه زباله ای نگاه میکرد که باید بیرون برده میشدند اتاق نشی گوچک و ملالا به نظر می رسید. مبлаш در ریسو کل آپارتمان تا حدودی بوی کپک میداد. پوسر بازی یه فرشته روی دیوار چسبیده بود و یک قلم ویپ با برچسب ماریجوانا روی میز قهوه قرار داشت. زنی به تلویزیون خیره شده بود و داشت به سر زامبی‌ها شلیک می کرده. زن موی کوتاه آبی رنگ داشت و نورا یک لحظه به این فکر افتاد که شاید ایزی باشد. گفت: سلام. زن برگشت. ایزی نبود. چشمانش خابالود و نگاهش تو خالی بود. انگار زامبی هایی که می‌کشت، کمی رویش تأثیر گذاشته بودند. احتمالاً آدمی کاملاً خوب به شمار میرفت اما نورا پیش از این هرگز او را ندیده بود. زن لبخند زد. سلام، شعر جدیدت به کجا رسید؟ ها؟ آره، خیلی خوب پیش میره. ممنون. نورا با حالت گیج و سردرگم در آپارتمان دوری زد. دری را تصادفی باز کرد و متوجه شد همام و توالت است حس نمیکرد نیازی به توالت داشته باشد اما به اندکی زمان برای فکر کردن چرا؟ بنابراین در را پشت سرش بست دستهایش را شست و به فرو رفتن شرخشی آب در حفره روشویی خیره شد به دوش نگاه کرد. پرده زرد و مات دوش مثل پرده های دانشجویی های دانشجوی کثیف بود این خانه در نظرش همین بود خانه دانشجویی. نورا سی و پنج سال داشت و در این زندگی توی خانه دانشجویی زندگی می کرد. یک قوطی قرص زد دفت فلکسیتین کنار روشویی دید و آن را برداشت. نوشته نسخه برای نونسید را روی در قوطی خواند به بازویش نگاه کرد و دوباره زخمها را دید. حس اینکه بدن خودت سر نخهای رازی را برایت فاش کند عجیب بود. مجلعی روی زمین کنار سنگ توالت افتاده بود. نشنال همانی که روی جلدش سیاه چالی داشت و نورا همین دیروز در زندگی دیگری آن سوی دنیا آن را خوانده بود حس کرد مجله خودش باشد چون همیشه از خواندنش لذت می‌برد و بیشتر مواقع مخصوصاً همین اواخر ناگهان تصمیم می‌گرفت باید مجله را بخرد چون هیچ کدام از نسخه های آنلاین هرگز نمی‌توانستند زیبایی عکس های توی مجله را درست نشان بدهند یاد یازده سالگیش افتاد که های اسفالبارد را در مجله پدرش نگاه می‌کرد. آن موقع اسفالبارد بسیار وسیع و خالی از سکنه و قدرتمند به نظرش رسیده بود و به این فکر افتاده بود که چه حسی دارد اگر بتواند مثل دانشمندان و کاوشگران توی مقاله تابستانش را در آن جزایر صرف یک جور تحقیقات شناسی کند و زندگی بگذراند. در عالم بچگی عکسها را از مجله جدا کرد تا در نهایت سر از تابلوی توی اتاق خوابش درآورند. آورند. تا سالها بعد در مدرسه نهایت تلاشش را در درس‌های علوم و زمین کرده بود تا شاید روزی بتواند مثل دانشمندان توی مقاله تابستان‌هایش را در میان یخ یخصده و آب درره ها بگذراند و توتی های دریایی پرواز کنند از بالای سرش رد شوند. اما پس از فوت پدرش و همچنین خواندن کتاب فراسوی خوب و بد نیچه به این نتیجه رسید که انگار فلسفه تنها رشته است که با جدیت درونی ناگهانیش همخانی دارد و خودش هم بیشتر دوست دارد ستاره موسیقی راک باشد تا دانشمند. پس از بیرون آمدن از توالت پیش همخانهی مرموزش برگشت. روی مبلش هست و چند لحظهی منتظر ماند و بازی او را تماشا کرد. توی بازی گلوله‌ای به سر شخصیت زن خورد. زن با سرخوشی رو به تلویزیون قرید. گم شو زامبی بدپک و پوز. قلم ویپ را برداشت. نورا به این فکر افتاد که این زن را از کجا می‌شناسد. پیش فرض گرفت که همخانه راجب چیزی که گفتی فکر کردم. نورا پرسید: چی گفتم؟ درباره نگهداری گربه دیگه. اینکه که گفتی می‌خوای از اون گربه مراقبت کنی؟ آهان آره یادم اومد فکر بدیه رفیق واقعا گربه ها رو میگم مگه گربه ها چشونه؟ یه انگلی دارن توکسو پلاس نمیدونم چی نورا در این باره میدانست در واقع از دوران نوجوانیش این موضوع را میدانست زمانی که برای به دست آوردن سابقه کاری توی پناهگاه حیوانات بتفورد کار میکرد توکسو موز ها همین داشتم یه پادکست گوش میدادم خب بعد گفت یه گروه میلیاردر بین المللی هست که گربه ها رو به این انگلا آلوده کردند تا با خنگ و خنگتر کردن آدم ها بتونن کنترل دنیا رو توی دست خودشون بگیرن اصلا خودت بهش فکر کن هر جاره که نگاه می یه گربه هست داشتم درباره همین با جرد حرف می زدم جرد گفت جوجو این روزا چی میکشی؟ منم گفتم از همونایی که خودت بهم میدی اونم گفت. آره میدونم بعد هم درباره ملخا برام گفت ملخا جوجو گفت آره درباره ملخا شنیدی چی رو همشون دارن خودکشی میکنن چون یه کرم انگلی توی بدنشون رشد میکنه که باید یه موجود آبزی بزرگ بشه توی همین مدت که داره بزرگ میشه کنترل مغز ملخا رو به دست میگیره واسه همین ملخه پیش خودش فکر میکنه وایسا ببینم من که آبو خیلی دوست دارم بعدم با کله میپرن توی آبو میمیرن همیشه این اتفاق داره میافته گوگلش کن گوگل کن خودکشی ملخ حالا حالا بگذاریم منظورم اینه که آدمای قدرتمند دنبال اینن که با گربه ها ما رو بکشن واسه همین هم اصلا طرفشون نرو نورا بی اختیار پیاپی پی به این فکر میکرد که این زندگی چقدر با آنچه در ذهن ترسیم کرده بود تفاوت دارد خودش و ایزی را سوار برکشتی نزدیک خلیج بایرون تصور میکرد که از دیدن نهنگ های گوش پشت به هیجان میآیند اما حالا میدید که توی این آپارتمان کوچک در سیدنی نشسته است که بوی ماریجوانا میدهد و همخانههایش عاشق تئوری های توطعه است و نمیگذارد او نزدیک گربه ها شود. ایزی چی شد؟ نورا ناگهان متوجه شد که این سوال را با صدای بلند پرسیده است به نظر می آمد جوجو گیر شده باشد ایزی؟ همون دوست قدیمید؟ آره، همونی که مرد؟ کلماتش آنقدر سریع به زبان آمدند که نورا نتوانست درکشان کند مم، مم، چی؟ مگه همون دختره رو نمیگی که تصادف کرد؟ چی؟ به نظر میرسید جوجو گیج شده باشد. باریکه های دود جلوی صورتش پیچ میخوردند. حالت خوبه نورا؟ ویپ را به سمت او گرفت. میخوای؟ نه ممنون خوبم. جوجو نخودی خندید. چه عجب. نورا گوشیش را بیرون آورد آنلاین شد. در محل جسجو نوشت ایزابل هرش. بعد رفت به پنجره اخبار. پیدا شد. یک سرخط خبری، بالای عکس صورت برونزه ایزی بود که لبخند میزد. زنی بریتانیایی در تصادف جاده ای در نیو ساوت ویلز کشته شد. شب گذشته زنی 33 ساله پس از برخورد تویوتا کرولاگش با خودروی دیگری که در سمت مخالف بزرگراه پاسیفیک حرکت میکرد کشته شد. سه سرنشین خودروی مقابل هم در بیمارستان جنوب شهر بندر کافس بستری شدند. رانندگی خانمی که پس از شناسایی مشخص شد ایزابل هرش نام دارد و شهروند بریتانیاست است، اندکی پیش از ساعت نه شب در صحنه تصادف جان باخت. او تنها سرنشین تویوتا بود. طبق گفته های نورا سید، همخانه او ایزابل در مسیر بازگشت از سیدنی به خلیج بایرون بود تا در جشن تولد نورا شرکت کند. ایزابل مدتی پیش در شرکت گردشگری تماشای نهنگ‌های خلیج بایرون آغاز به کار کرده بود. نورا گفت خیلی نراحتم. همین یک ماه پیش بود که با هم اومدیم استرالیا ایزی میخواست در هر موقع که بتونه اینجا بمونه. اونقدر پر انرژی و سرزنده بود که انگار برام غیر ممکنه بتونم دنیا رو بدون اون تصور کنم. خیلی واسه شغل جدیدش هیجان داشت. درک و تحمل غم نبودنش خیلی سخته. مسافران خودروی دیگر همگی آسیب دیدند و راننده کریستیل را با هلیکوپتر به بیمارستان بارینگا بردند. اداریه پلیس نیو ساوت ویلز از تمام کسانی که شاهد تصادف بوده اند خواسته که پیش بیایند و در صورت اطلاع به پرسش هایشان پاسخ بدهند نورا زیر لب زمزمه کرد خدای من احساس ضعف می کرد وای ایزی میدانست که ایزی در تمام یا حتی بیشتر زندگی های او کشته نشده اما در این زندگی مرگ ایزی برایش واقعی بود و غمی هم که حس می کرد واقعی بود آشنا و وحشتانگیز که احساس گناه را هم با خودش میآورد پیش از اینکه نورا بتواند به درستی ماجرارات را درگو و تحلیل کند، گوشیش زنگ خورد. روی صفحه نوشته بود کار. صدای مردی که آهسته می‌قوریت. کجایی؟ چی؟ نیم ساعت پیش باید میرسیدی اینجا. کجا؟ ترمینال کشتی، قرار بود بلیط بفروشی. شماره رو درست گرفتم دیگه. دارم با نورا حرف میزنم؟ را آه کشید حداقل با یکیشون و کم کم محو شد.